اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیف بنام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام میم صاد کتاباً انزل الیک فلا يكن في صدرك حرج من ورت بربه ورت زیربه و ذکرا این کتابی است که بر تو نازل شده پس نباید از ناهیه آن ناراحتی در سینه داشته باشی تا به وسیله آن مردم را از عواقب سوء عقاید و اعمال نادرستشان بین دهی و تذکریست برای مؤمنان اتبعو ما انزل من ولا تتبعو ولا لا من دونه قلیلا ما تذكرون از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید و از اولیا و معبودهای دیگر جز او پیروی نکنید اما کمتر متذکر میشوید. فَكَمْ بسیار شهرها و آبادیها که آنها را بر اثر گناه فراوانشان حلاک کردیم و عذاب ما شب هنگام یا در روز هنگامی که استراحت کرده بودند به سراغشان آمد فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ إلا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا ظَالِمِينَ و در آن موقع که عذاب ما به سراغ آنها آمد سخنی نداشتند جز اینکه گفتند ما ظالم بودیم ولی این اعتراف به گناه دیگر دیر شده بود و سودی به حالشان نداشت به یقین هم از کسانی که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدند سؤال خواهیم کرده و هم از پیامبران سؤال می‌کنیم. تَرَنَقُصْن عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ و مسلما اعمالشان را با علم خود برای آنان شرح خواهیم داد و ما هرگز غائب نبودیم بلکه همه جا حاضر و ناظر اعمال بندگان هستیم والوزن يومئذ للحق فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وزن کردن اعمال و سنجش ارزش آنها در آن روز حق است کسانی که میزان های عمل آنها سنگین است همان رستگارانند و من خفت موازينه فاولائك فاولائك الذين قصروا انفسهم بما كانوا بما كانوا باياتنا يظلمون و کسانی که میزان های عمل آنها سبک است افرادی هستند که سرمایه وجود خود را به خاطر ظلم و ستمی که نسبت به آیات ما می کردند از دست داده اند و لقد مکنناکم فی الارض و جعلنا لکم فی ها معایش قلیلا ما, ما تسلط و مالکیت و حکومت برزمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم اما کمتر شکر گذاری می کنید ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ما شما را آفریدیم سپس صورت بندی کردیم بعد به فرشتگان گفتیم برای آدم خضوع کنید آنها همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود اگهلت خداوند به او فرمود در آن هنگام که به تو فرمان دادم. چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی گفت من از او بهترم مرا از آتش ای و او را از گل قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین گفت از آن مقام و مرتبه اطفرودای تو حق نداری در آن مقام و مرتبه تکبر کنی بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی قال الى گفت مرا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند مهلت ده و زنده بگذار قال من فرمود تو از مهلت داده شدگانی گفت اکنون که مرا گمراه ساختی من بر سر راه مستقیم تو در برابر آنها کمین میکنم ثم لا تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغشان میروم و بیشتر آنها را شکر گذار نخواهی یافت قال خرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فرمود از آن مقام با ننگ و آر و خاری بیرون رو و سوگند یاد می کنم. कि हर कस از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پر می کند و ای آدم مسکن انت وزوجک الجنه فکلا من حيث شئتما فکلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین و ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از هر جا که خواستید بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید که از سف همکاران خواهید بود فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوآتیما وقال وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا مَلَكَيْنِ سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آن را از اندامشان پنهان بود آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نحی نکرده مگر به خاطر اینکه اگر از آن بخورید سرشته خواهید شد یا جاودانه در بهشت خواهید ماند و قاسمهما لکما لمن الناصحین و برای آنها سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ وَبِهَذِهِ التَّرْتِيبِ با فریب از مقامشان فرود آورد و هنگامی که از آن درخت کشیدند اندامشان بر آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگهای درختان بهشتی بر خود تا آن را بپوشانند و پروردگارشان آنها را نداداد که آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين گفتند پروردگارا ما به ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود فرمود از مقام خیش فرود در حالی که بعضی از شما نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود شیطان دشمن شماست و شما دشمن او و برای شما در زمین قرارگاه و وسیله بهره تا زمان معینی خواهد بود. قال فرمود: در آن زمین زنده میشوید و در آن می میرید و در رستاخیز از آن خارج خواهید شد. يا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا و ریسو آتیکم ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست اما لباس پرهیزگاری بهتر است اینها همه از آیات خداست تا متذکر نعمت های او شوند یا بنی آدم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان لا جعل الشياطين اوليا للذين لا يؤمنون اي فرزندان آدم شيطان شما را نفری بد آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد چه این که اینکه او و همکارانش شما را میبینند از جایی که شما آنها را نمیبینید، اما بدانید ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمیآورند. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون و هنگامی که کار زشتی انجام میدهند میگویند پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده است بگو خداوند هرگز به کار زشت فربان نمی دهد. آیا چیزی به خدا نسبت می دهید که نمی قل امر ربی بالقسط و اقیم عند کل مسجد و دعوهم مخلصین له الدین بگو پروردگارم امر به عدالت کرده است و توجه خیش را در هر مسجد و به هنگام عبادت به سوی او کنید و او را بخوانید، در حالی که دین خود را برای او خالص گردانید و بدانید همانگونه که در آغاز شما را آفرید بار دیگر در رستاخیز باز می گردید فریقا هدا و فریقا حق عليهم مضلاله اینه اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون و انهم مهتدون جمعی را هدایت کرده و جمعی که شایستگی نداشته اند، گمراهی بر آنها مسلم شده است. آنها کسانی هستند که شیاطین را به جای خداوند، اولیای خود انتخاب کردند، و گمان می کنند هدایت یافته یا بنی آدم خذو زینتکم عند كل مسجد و قلو و و لا ای فرزندان آدم زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اصراف نکنید که خداوند مصرفان را دوست نمی‌دارد. قل من حر مزینت الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامه كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. دگو چکسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود اینگونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند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 و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمیدانید ولكل امت اجل فإذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون برای هر قوم و جمعیتی زمان و سرآمد معینی است و هنگامی که سرآمد آنها فرا رسد نه ساعتی از آن تأخیر می و نه بر آن پیشی میگیرند گیرند یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون ای فرزندان آدم اگر رسولانی از خود شما به سراغتان بیایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند از آنها پیروی کنید کسانی که پرهیزگاری پیش کنند و عمل صالح انجام دهند و در اصلاح خیش و دیگران بکوشند نه ترسی بر آنهاست و نه قمناک می شوند وَالَّذِينَ كذبوا بآياتنا واستكبروا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أصحاب اصحاب النار هم فیها خالدون و آنها که آیات ما را تکزید کنند و در برابر آن تکبر ورزند، اهل دوزخند جاودانه در آن خواهند ماند. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. چه شيکسی ستمکار ترست از آنها که بر خدا دروغ میبندند یا آیات او را تکذیب میکنند آنها نصیبشان را از آنکه مقدر شده از نعمتها و مواهب این جهان میبرند تا زمانی که فرستادگان ما به سراغشان روند که جانشان را بگیرند از آنها میپرسند کجایند معبودهایی که غیر از خدا میخواندید؟ چرا به یاری شما نمیآیند؟ میگویند آنها همه گم شدند و از ما دور گشتند و ضد خود گواهی میدهند که کافر بودند قالد في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امت لعنت اختها <سؤال> حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ أَضَلُّوْنَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارُ خداوند به آنها میگوید در صف گروه‌های مشابه خود از جن و انس در آتش وارد شدید هر زمان که گروهی وارد میشوند گروه دیگر را لعن می کنند تا همگی با ذلت در آن قرار گیرند در این هنگام گروه پیروان درباره پیشوایان خود میگویند خداوندا اینها بودند که ما را گمراه ساختند پس کیفر آنها را از آتش دو برابر کن می برای هر کدام از شما عذاب مضاعف است ولی نمیدانید وقالت أولهم لأخراهم فما كان لكم علینا من فضل فذوقوا فذوقو العذاب بما كنتم تكسبون و پیشوایان آنها به پیروان خود میگویند شما امتیازی بر ما نداشتید پس بچشید عذاب الهی را در برابر آنچه انجام می‌دادید این الذین بآياتنا بآیاتینا واستکبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الْجَمْدَةَ حتى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمِّ الْخِيَاطَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُجِرِمِينَ کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند هرگز درهای آسمان به رویشان گشوده نمی و هیچگاه داخل بهشت نخواهند شد مگر اینکه شطر از سوراخ سوزن بگذرند این گونه گنهکاران را جزا میدهیم. لهم من جهنم منها و من فوقهم غواش وكذالك نجز الظالمين. برای آنها بستری از آتش دوزخ و روی آنها پوشش هایی از آن است و این چنین ظالمان را جزا می دهیم. و آمنوا و الصالحات لا نكلف نفسن إلا وسعها أولئك اصحاب الجنت هم فيها خالدون. و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند. البته هیچ کس را جز به اندازه توانایش تکلیف نمیکنیم. آنها اهل بهشتند و جاودان در آن خواهند ماند و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتیم الانهار وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وما كنا, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ و نودو تلكم الجنت اورستموها اورستموها بما کنتم تعملون و آن در دلها از کینه و حسد دارند برمیکنیم تا در صفا و سمیمیت با هم زندگی کنند و از زیر قصرها و درختان آنها نهرها جریان دارد میگویند ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این همه نعمتها ها شد و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما به اینها راه نمی یافتیم مسلما فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و در این هنگام به آنان ندا داده می شود که این بهشت را در برابر اعمالی که انجام میدادید به ارث بردید و ندا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم لعنه الله على الظالمين و بطهشتيان دوغخيان را صدا میزنند که آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود همه را حق یافتیم آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید در این هنگام ندادهنده ای در میان آنها ندا می دهد که لعنت خدا بر ستمگران باد الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا ويبغون وهم بالاخره كافرون همانها که مردم را از راه خدا باز میدارند و با القای شبهات میخواهند آن را کج و معوج نشان دهند و آنها باخره کافرند وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باسمهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون دو بهشتیان و دوزخیان هجابی است و بر اعراف مردانی هستند که هر یک از آن دو را از چهرهشان میشناسند و به بهشتیان صدا میزنند که درود بر شما باد اما داخل بهشت نمیشوند شوند در حالی که امید آن را دارند وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين به دوزخیان می افتد می پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده و اصحاب اعراف مردانی از دوزخیان را که از سیمایشان آنها را میشناسند صدا میزنند و میگویند دیدید که گردآوری شما از مال و سروت و زن و فرزند و تکبرهای شما به حالتان سودی نداد اها اولئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ودخول الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون آيا إنها ان واماندگان بر اعراف همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟ ولی خداوند به خاطر ایمان و بعضی اعمال خیلیشان آنها را بخشید همچنین به آنها گفته می شود داخل بهشت شوید که نه ترسی دارید و نه قمناک می شوید. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مما رَزَقَكُمُ الله <تصفيق> قَالُوا إن و دو زخیان بهشتیان را صدا میزنند که محبت کنید و مقداری آب یا از آن چه خدا به شما روزی داده به ما ببخشید. آنها در پاسخ میگویند خداوند اینها را بر کافران حرام کرده الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما ننسول لقاء يوم امهذا وما كانوا باياتنا يجحدون همانها که دین و آیین خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا آنان را مقرور ساخت امروز ما آنها را فراموش می‌کنیم همان گونه که لقای چنین روزی را فراموش کردند و آیات ما را انکار نمودند ولقد بكتاب على علم منه ما کتابی برای آنها آوردیم که اسرار و رموز آن را با آگاهی شرح دادیم کتابی که مایه هدایت و رحمت برای جمعیتی است که ایمان میآورند آورند الیان نظرون الا تاویله یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا فهلنا من شفعاء فیشفعو لنا أو رد فنعمل الذي کننا نعمل قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون آیا آنها جز انتظار تعویل آیات و فرارسیدن تحدیدهای الهی دارند؟ آن روز که تعویل آنها فرارسد، کار از کار گذشته و پشیمانی سودی ندارد. و کسانی که قبلا آن را فراموش کرده بودند میگویند فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند. آیا امروز شفیعانی برای ما وجود دارند که برای ما شفاعت کنند؟ یا به ما اجازه داده شود به دنیا بازگردیم و اعمالی غیر از آنچه انجام می دادیم انجام دهیم ولی آنها سرمایه وجود خود را از دست داده اند و معبودهایی را که به دروغ ساخته بودند همگی از نظرشان گم می شوند. نه راه بازگشتی دارند و نه شفیعانی إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِ اللَّيْلَنَّهَا رَيَاطُلُبُهُ حَتِيثَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ الا له الخلق والامر تبارك الله رب پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت با پرده تاریک شب روز را میپوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند آگاه باشید که آفرینش و تدبیر جهان از آن او و به فرمان اوست پر برکت و زوال ناپذیر است خداوندی که پروردگار جهانیان است اودعوا ربکم تضرعا وخفيا انَّهُ لا يُحِبُّ هر خود را آشکارا از روی تزرع و در پنهانی بخوانید و از تجاوز دست بردارید که او متجاوزان را دوست نمی دارد. وَلا تُفْسِدُوا بعد الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا و دعوه خوفا خَوْفًا وَطَمَعًا این رحمت الله قریب من و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانید. بیم از مسئولیتها و امید به رحمتش و نیکی کنید زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه, سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فَأَنزَلَ عَلَيْنَا مَا أَفَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ او كسيست که بادها را بشارت دهنده در پیشا پیش باران رحمتش میفرستد تا عبرهای سنگین بار را بر دوش کشند سپس ما آنها را به سوی زمین‌های مرده می‌فرستیم و به وسیله آنها آب حیات بخش را نازل می‌کنیم و با آن از هر گونه میوه ای از خاک تیره بیرون می‌آوریم این گونه مردگان را نیز در قیامت زنده می کنیم شاید متذکر شوید والبلد الطیب یخرج نباته بی اذن والذی لا الا نكدا كذلك نصرف لقوم يشکرون. سرزمین پاکیزه و شیرین گیاهش به فرمان پروردگار میروید اما سرزمین های بدتینت و شورزار جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمیروید این گونه آیات خود را برای آنها که شوق گذارند بیان می لقد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ما نوح را به سوی قومش او به آنان گفت ای قوم من تنها خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست و اگر غیر او را عبادت کنید من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم. قال الملأ من قومه إننا لنراك في ضلال مبين ولی اشراف قومش به او گفتند ما تو را در گمراهی آشکاری می‌بینیم قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين گفت ای قوم من هیچ گونه گمراهی در من نیست ولی من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم اولنकुम پروردگارم را به شما ابلاغ میکنم و خیل خواه شما هستم و از خداوند چیزهایی میدانم که شما نمیدانید او واجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لينذرکم لينذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا از عواقب اعمال خلاف بیم دهد و در پرتو این دستور پرهیزگاری پیشه کنید و شاید مشمول رحمت الهی گردید فکذبوه فا فانجیناه والذین معنو فی الفلک و اغرقن الذین کذبو قوما اما سرانجام او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند رهایی بخشیدیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم که اینکه آنها گروهی نابینا و کور دل بودند و انا عاد اقاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، افلا تتقون و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم گفت ای قوم من تنها خدا را پرستش کنید که جز او معبودی برای شما نیست آیا پرهیزگاری پیشه نمیكنید قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك فی سفاهة لنا لنظنك من الكاذبين. اشراف كافر قوم او گفتند ما تو را در سفاهت و نادانی و سبوک مقزی می می‌بینیم و ما مسلماً تو را از دروغگویان می‌دانیم. قال يا قوم من رب العالمين. گفت ای قوم من هیچ گونه در من نیست ولی فرستاده‌ای از طرف پروردگار جهانیانم و رسالات ربی وانا لكم ناصح امین رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ میکنم و من خیرخواه امینی برای شما هستم وعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم اذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسط فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا از مجازات الهی بیمتان دهد و بیاد آورید هنگامی که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد و شما را از جهت خلقت جسمانی گسترش و قدرت داد پس نعمتهای خدا را یاد آورید شاید رستگار شوید. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان یعبد آباؤنا فاأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین گفتند آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچرا پدران ما میپرستیدند رها کنیم؟ پس اگر راست میگویی آنچه را از بلا و عذاب الهی به ما وعده میدهی بیاور قال قد وقع علیکم من ربكم رجس و غبب اتجادلوننی فی اسمائن سمیتموها سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله گفت پلیدی و قذب پروردگارتان شما را فرا گرفته است آیا با من در مورد نامهایی مجادله میکنید که شما و پدرانتان به عنوان معبود و خدا بر بت‌ها گزارده اید در حالی که خداوند هیچ دلیلی درباره آن نازل نکرده است پس شما منتظر باشید من هم با شما انتظار میکشم. فَأَنْجَيْنَا هو الَّذِينَ بَعَهُ بِرَحْمَتٍ منا وقطعنا دابر الَّذِينَ كذبوا بِ وما كانوا كَانُوا مُؤْمِنِينَ سرانجام او و کسانی را که با او بودند به رحمت خود نجات بخشیدیم و ریشه کسانی که آیات ما را تکثیب کردند و ایمان نیاوردند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 و بسوی قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای قوم من تنها خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده این ناقه الهی برای شما معجزه است. او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا از علفهای بیابان بخورد و آن را آزار نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت و اذکرو اید جعلكم خلفاء من بعد عادی و وبن واقم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشت هایش قصرها برای خود بنا می و در کوهها برای خود خانه ها می تراشید نعمت های خدا را متذکر شوید و در زمین به فساد نکوشید قال الملع الذین استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ولی اشراف متکبر قوم او به مستث که ایمان آورده بودند گفتند آیا براستی شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است آنها گفتند ما به آنچه او بدان معموریت یافته ایمان آورده ایم متکبران گفتند ولی ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید کافریم. فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا ان كنت من المبسرين سپس ناقه را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند و گفتند ای صالح اگر تو از فرستادگان خدا هستی آنچه ما را با آن تهدید می بیاور. فخادت هم روجیفتتون فاصل حموفی داریمیم جیمین سر زمین لرز آنها را فرا گرفت و صفگاهان تنها جسم بیجانشان در خانه باقی مانده بود. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ صالح از آنها روی برتافت و گفت ای قوم من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و شرط خیرخواهی را انجام دادم ولی چکنم که شما خیرخواهان را دوست ندارید و لوتا اذ قال لقومه اتتون الفاحشت ما سبقكم بها من احد من العالمین و به خاطر آورید لوت را هنگامی که به قوم خود گفت آیا عمل بسیار زشتی را انجام می دهید که هیچیک از جهانیان پیش از شما انجام نداده است؟ اینکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون آیا شما از روی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید؟ شما گروه اسرافکار و منحرفی هستید و ما که جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود كه گفتند اینها را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاک دامنی را می تلبند و با ما هم صدا نیستند فَأَنْ جَيْنَهُ وَأَهْلَهُ اِلَّمْ رَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ چون کار به اینجا رسید ما او و خاندانش را رهایی بخشیدیم جز همسرش که از بازماندگان در شهر بود وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ و سپس چنان بارانی از سنگ بر آنها فرستادیم که آنها را در هم کوبید و نابود ساخت پس بنگرد سرانجام کار مجرمان چه شد وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا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 ذلكم خیر لكم این كنتم مؤمنین و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادین گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است بنابراین حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین بعد از آن که در پرتو ایمان و دعوت انبیا اصلاح شده است فساد نکنید این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید ولا تقعدو بكل صراط و تصدون عن الله من آمن من آمن به و تبغونها عوجا و اذكروا اذ کنتم فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين و بر سر هر راه ننشینید که مردم با ایمان را تهدید کنید و مؤمنان را از راه خدا باز دارید و با القای شبهات آن را کج و معوج نشان دهید و به خاطر بیاورید زمانی را که اندک بودید و او شما را فزونی داد و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه بود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 به آنچه من به آن فرستادی شد، ام ایمان آورده اند و گروهی ایمان نی آورده اند صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند که او بهترین داوران است. قال الملاو الذين استكبروا من قومه لنخرجن يا شعيب والذين آمنوا معك وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْلَتَ عُودُنَّ فِي ملتنا قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند ای شعیب به یقین تو و کسانی را که به تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خود بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به آین ما بازگردید گفت آیا میخواهید ما را بازگردانید اگرچه مایل نباشیم؟ قد افترینه علی الله کذبا این عدنا فی ملتکن بعد اذ نجان الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ دَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ فتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ما به آین شما بازگردیم بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشیده به خدا دروغ بسته ایم و شایسته نیست که ما به آن بازگردیم مگر این که خدایی که پروردگار ماست بخواهد علم پروردگار ما به همه چیز احاطه دارد تنها بر خدا توکل کرده ایم پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی وقال الملع الذین کسروا من قومه لئین اتبعتم شعیبا اینکم اذن لخاسرون اشراف زورمند از قوم او که کافر شده بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید شما هم زیانکار خواهید شد فأخذتهم رجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین سپس زمین لرز آنها را فرا گرفت و صبحگاهان به صورت اجسادی بیجان در خانه هاشان مانده بودند الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين آنها که شعیب را تکذیب کردند گویا هرگز در آن خانهها سکونت نداشتند آنها که شعیب را تکذیب کردند زیانکار بودند فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم سپس از آنان روی برتافت و گفت ای قوم من من رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و برای شما خیرخواهی نمودم با این حال چگونه بر حال قوم بی ایمان تاسف بخورم و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا, الا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم لعلهم یالضرعون و ما در هیچ شهر و آبادی پیام برین نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به ناراحتی ها و خسارتها گرفتار ساختیم شاید به خدایند آیند و به سوی خدا بازگردند و تذرع کنند ثم بدلنا ما كان السيئه حتی حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس ابا النضر والسراء اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون سپس هنگامی که این هشدارها در آنان اثر نگذاشته نیکی و فراوانی نعمت و رفاه را به جای بدی و ناراحتی و گرفتاری قرار دادیم آنچنان که فزونی گرفتند و گونه نعمت و برکت یافتند و مقرور شدند و گفتند تنها ما نبودیم که گرفتار این مشکلات شدیم به پدران ما نیز تنگ دستی و توانگری رسید چون چون شد آنها را ناگهان به سبب اعمالشان گرفتیم و مجازات کردیم در حالی که نمی فهمیدن. ولو ان اهل القرا و فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن, وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می و تقوا پیشه می کردند برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم ولی آنها حق را تکذیب کردند ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم آیا اهل این آبادی ها از این ایمنند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بیاید در حالی که در خواب باشند؟ او امین اهل عادهم بسونو حون و ضحا وهم العون آیا اهل این آبادیها ها از این ایمنند که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بیاید در حالی که سرگرم بازی هستند فهامین مكر الله! فلا يَأْمَنُ مكر الله إِلَّا القوم الْخَاسِرُونَ آیا آنها خود را از مکر الهی در امان می دانند؟ در حالی که جز زیان خود را از مکر و مجازات خدا ایمن نمی اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون آیا كساني که وارث روی زمین بعد از صاحبان آن میشوند عبرت نمیگیرند که اگر بخواهیم آنها را نیز به گناهانشان حلاک میکنیم و بر دلهایشان مهر می نهیم تا صدای حق را نشنوند تلک القرآن قص عليک من انبائها ولقد جاءتهم هم رسلهم بالبینات فما كانوا, كانوا لیؤمنوا بما كذبوا من قبل كذالك يطبع الله این ها شهرها و آبادیها است که قسمتی از اخبار آن را برای تو شرح می دهیم پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند ولی آنها چنان لجوج بودند که به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند ایمان نمی آوردند این گونه خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد و بر اثر لجاجت و ادامه گناه حس تشخیصشان را سلب می کند و ما وجدنا لأکثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین و بیشتر آنها را بر سر پیمان خود نیافتیم بلکه اکثر آنها را فاسق و گناهکار یافتیم ثم بعثنا من بعدهم موسى با آیاتنا الی فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبه المفسدین سپس به دنبال آنها پیامبران پیشین موسی را با آیات خیش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم اما آنها با عدم پذیرش به آن آیات ظلم کردند ببین عاقبت مفسدان چگونه بود و قال موسی یا فرعون رسول و موسی گفت ای فرعون من فرستاده از سوی پروردگار جهانیانم حقیقنا علی الا اقول علی الله الا الحق قد جئتكم ببینه من ربكم فارسل معي اسرائیل اسرائيل سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم من دلیل روشنی از پروردگارتان برای شما آورده هم. پس بنی اسرائیل را با من بفرست جئت بی فأتی بها من فرعون گفت اگر نشانه آورده ای نشان بده اگر از راستگویانی. فَأَلْقَ عصاه فَإِذَا هِيَ ثعبان مبین موسا عصای خود را افکند ناگهان اجده های آشکاری شد و نزع یده فإذا هی بیضاء لناظرین و دست خود را از گریبان بیرون آورد سفید و درخشان برای بینندگان بود قال الملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم اکرافیان فرعون گفتند بی این ساحر ماهر و داناست یرید أن یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند نظر شما چیست و در برابر او چه دستوری دارید اول سپس به فرعون گفتند کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست یاتونک ساحر تا هر ساحر دانا و کارازموده ای را به خدمت تو بیاورند وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا ان لنا لاجرا إن كننا نحن الغالبين صاهران نزد فرعون آمدند و گفتند آیا اگر ما پیروز گردیدیم اجر و پاداش مهمی خواهیم داشت؟ قال نعم وانكم لمن المقربين گفت آری و شما از مقربان خواهید بود. او علی اما ان تلقی و, اما و اما ان و ان نكون نحن الملقين روز مبارزه فرار رسید. ساهران گفتند ای موسی یا تو وسایل سحر را بیافکن یا ما میافکنیم. اول ان القوا فلما القوس سحر اعينا الناس واسترهبوهم وجاءوا وجاءوا بسحر عظيم گفت شما بیفکنید و هنگامی که وسایل سحر خود را افکندند مردم را چشم بندی کردند و ترساندند و سحر عظیمی پدید آوردند و الی موسی أن القی عصاك فاذا تلقف ما ما به موسی وحی کردیم که عصای خود را بیفکند ناگهان به صورت مار عظیمی درآمد که وسایل دروغین آنها را به سرعت برمیگرفت فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون در این هنگام حق آشکار شد و آنچه آنها ساخته بودند باطل گشت فقلبون هنالک و انقلمون صادرین و آنجا همگی مقلوب شدند و خار و کوچک گشتند و القی السحرات ساجدین و ساهران بی اختیار به سجده افتادند. قالوا آمنا و گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. پروردگار موسا و هارون قال فرعون آمنت به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا لتخرجوا منها أهلها فسنعلمون فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید حتماً این نیرنگ و توته‌ای است که در این شهر و دیار چیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید ولی بهزودی خواهید دانست لا انقطع عن ایدیکم واعجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم ثم لا اصلبنکم اجمعین سوگند میخورم که دستها و پاهای شما را به طور مخالف قطع می کنم. سپس همه را به دار می آویزند قالوا اننا الى ربنا منقلبون باهران گفتند مهم نیست ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم وما تنقم مننا الا ان امننا بايات ربنا لما لما جاءتنا ربنا افریغ علينا صبرا و توفنا مسلمین انتقام تو از ما تنها به خاطر این است که ما به آیات پروردگار خیش هنگامی که به سراغ ما آمد ایمان آوردیم بارلا ها صبر استقامت بر ما ریز و ما را مسلمان بمیران وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلئتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون و اشراف قوم فرعون به او گفتند آیا موسی و قومش را رها میکنی که در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را رها سازد؟ گفت: «به زودی پسرانشان را میکشیم و دخترانشان را زنده نگه میداریم تا به ما خدمت کنند و ما بر آنها کاملا مسلطیمقال مسلن قومی بالله و واص. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين موسی قوم خود گفت از خدا یاری جوید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار میکند و سرانجام نیک برای پریز گرم است. قالوا اؤذین من قبل آتینا و ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم اي يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر فياضر كيف تعملون؟ گفتند پیش از آنکه بسوی به سوی ما آزار دیدیم، همکنون پس از آمدنت نیز آزار می بینیم، کی این آزارها سر خواهد آمد؟ گفت، امید است پروردگارتان دشمن شما را حلاک کند و شما را در زمین جانشین آنها سازد و بنگرد چگونه عمل می کنی. ولقد لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقصیم من الثمرات لعلهم یذکرون و ما نزدیکان فرعون و قوم او را به خوشک و کمبود میوه ها گرفتار کردیم شاید متذکر گردن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 ولكن اكثرهم لا یعلمون اما آنها نه تنها پند نگرفتند بلکه هنگامی که نیکی و نعمت به آنها میرسید میگفتند به خاطر خود ماست ولی موقعی که بدی و بلا به آنها میرسید میگفتند از شومی موسی و کسان اوست آگاه باشید سرچشمه همه اینها نزد خداست ولی بیشتر آنها نمی و, مهما به من بها فما نحن بی و گفتند هر نشانه و معجزه که برای ما بیاوری که سهرمان کنی ما به تو ایمان نمی آوریم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكم وملواضفاع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين سپس بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم توفان و ملخ و آفت گیاهی و قرباقه ها و خون را که نشانه های از هم جدا بودند بر آنها فرستادیم ولی باز بیدار نشدند و تکبر ورزیدند و جمعیت گناهکاری بودند ولمّا وقع عليه المرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز لنؤمنا لك ولا نرسلنا معك بني اسرائيل ان بلا بر آنها مسلط می شد می گفتند ای موسا از خدای از برای ما بخواه به عهدی که با تو کرده رفتار کند اگر این بلا را از ما مرتفع سازی قطعا به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد اما هنگامی که بلا را پس از مدت معینی که به آن میرسیدند از آنها بر پیمان خیش را می شکستند. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافرين سرانجام از آنها انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق کردیم زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند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 و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانو یعریشون و مشرقها و مقربهای پربرکت زمین را به آن قوم به زعف کشانده شده واگزار کردیم و بعد نیچ پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که خرج دادند تحقق یافت و آنچه فرعون و فرعونیان از کاخ‌های مجلل میساختند و آنچه از باخهای داربست دار فراهم ساخته بودند در هم کوبیدیم و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتو على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وبني إسرائيل را سالم از دریا عبور دادیم ناگاه در راه خود به گروهی رسیدند که اطراف بودهایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند در این هنگام بنی اسرائیل به موسی گفتند تو هم برای ما معبودی قرارده گونه که آنها معبودان و خدایانی دارند گفت شما جمعیتی جاهل و نادان هستید این ها متبر ما هم فیه ما کانو یعملون اینها را که میبینید سرانجام کارشان نابودی است و آنچه انجام میدهند باطل و بیهوده است. قال الله و سپس گفت آیا غیر از خداوند معبودی برای شما بطلبم در حالی که او شما را بر جهانیان و مردم عصرتان برتری داد و اذ ان من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءکم ويستحيون نساءکم وَفِي ذَلِكُمْ عظیم به خاطر بیاورید زمانی را که از چنگال فرعونیان نجاتتان بخشیدیم آنها که پیوسته شما را به بدترین صورت شکنجه می‌دادند پسرانتان را می‌کشتند و زنانتان را برای خدمتگاری زنده میگذاشتند و در این آزمایش بزرگی از سوی خدا برای شما بود و وعدنا موسی ثلاثین لیلتا و اتممناها بعشر فتم ربیه فتممیقات ربیه اربعین لیله وقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع, ولا تتبع سبیل المفسدین و ما با موسی سی شب وعده گذاشتیم سپس آن را با ده شب دیگر تکمیل نمودیم به این ترتیب میعاد پروردگارش با او چهل شب تمام شد و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در میان قومم باشه و آنها را اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی من ما موسی ربه قال انظر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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ و هنگامی که موسا به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خودت را به من نشانده تا تو را ببینم گفت هرگز مرا نخواهی دید ولی به کوه بنگر اگر در جای خود ثابت ماند مرا خواهی دید اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد آن را همسان خاک قرار داد و موسا مدهوش به زمین افتاد چون به آمد عرض کرد خداوندا. منزهی تو از این که با چشم تو را ببینم من به سوی تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم قال یا موسی این نصطفیتک علن ناس و بی کلامی فخذ ما آتيتوك. خزمتایی تو خداوند فرمود ای موسا من تو را با رسالت های خیش و با سخن گفتنم با تو بر مردم برتری دادم و برگزیدم. پس آنچه را به تو دادام بگیر و از شکر گذاران باش. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا, فخذها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ وَبْبَرَا يَوْ دَرْ أَلْوَاحِ أَزْهَرْ مُوْزُوئِي نَوِشْئِيمُ و بیانی از هر چیز کردیم پس آن را با جدیت بگیر و به قوم خود بگو به نیکو ترین آنها عمل کنند و آنها که به مخالفت برخیزند کیفرشان دوزخ است و بزودی. جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون في الأرض بغير الحق وإن یروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن یروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن و این یرو سبیل الغیت تقیدوه سبیلا ذالک بی انهم کذبو بی آیاتنا عنها غافلین به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تکبر میورزند از ایمان به آیات خود منصرف می آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند اگر راه هدایت را ببینند آن را راه خود انتخاب نمی کنند و اگر طریق گمراهی را ببینند آن را راه خود انتخاب می کنند همه اینها به خاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن قافل بودند وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِ ولقاء وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ هل هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ و کسانی که آیات و دیدار رستاخیز را تکذیب و انکار کنند اعمالشان نابود میگردد آیا جز آن چرا عمل میکردند؟ پاداش داده میشوند و اتخذ قوم موسى من بعده من حوليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين قوم موسی بعد از رفتن او به میادگاه خدا از زیورهای خود گوساله ای ساختند جسد بیجانی جانی که صدای گوساله داشت آیا آنها نمیدیدند دیدند که با آنان سخن نمی گوید و به راه راست هدایتشان نمی کند؟ آن را خدای خود انتخاب کردند و ظالم بودند و سقط فی ایدیهم و قالو قالوا هنگامی ربنا و لنا لنکونن لنکونن من الخاسرين و که حقیقت به دستشان افتاد و دیدند گمراه شده اند گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد به طور قطع از زیان کاران خواهیم بود. ولم رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقل ألواح وأخذ برأس أخيه يجره قال بن آدم إن القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني فلا تشميت فلا تشميت بيا الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. و موسی خشمگین و عنده ناچ بسوي قوم خود بازگشت گفت. پس از من بد جانشینانی برایم بودید و آین مرا زایع کردید آیا در مورد فرمان پروردگارتان و تمدید مدت میاد او عجله نمودید و زود قضاوت کردید؟ سپس الواه را افکند و سر برادر خود را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید او گفت فرزند مادرم، این گروه مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند. پس کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده. قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِعَقِي وَأَدْخِلَّا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ موسا گفت پروردگارا من و برادرم را بیامورز و ما را در رحمت خود داخل فرما و تو مهربان ترین مهربانانی این الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم و ذلة في الحياة الدنیا و نجز المفترین کسانی که گوساله را معبود خود قرار دادند به زودی خشم پروردگارشان و ذلت در زندگی دنیا به آنها می‌رسد و این چونین کسانی را که بر خدا افترا می‌بندند کی میدهیم. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن ربك مِنْ بَعْدِهَا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ و آنها که گناه کردند و بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند امید افعه او را دارند زیرا پروردگار تو در پی این کار آموزنده و مهربان است. ولَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيهَا نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ هنگامی که خشم موسی فرو نشست، لوح را برگرفت و در نوشت‌های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگار خیش می و از مخالفت فرمانش بین دارند و اختار موسى قومه سبعین رجلا لیمی قاتنا فلما اخذتهم الرجفت قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل و أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك بِهَا بها من تشاء وتهدي, وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موسی از قوم خود هفتاد تن از مردان را برای میادگاه ما برگزید. و هنگامی که زمین لرز آنها را فرا گرفت و هلاک شدند گفت پروردگارا، اگر میخواستی میتوانستی آنها و مرا پیش از این نیز حلاک کنی آیا ما را به آنچه صفیحان من انجام داده اند مجازاتو حلاک میکنی؟ این جز آزمایش تو چیز دیگر نیست که هر کس را بخواهی و مستحق بدانی به وسیله آن گمراه می و هر کس را بخواهی و شایسته ببینی هدایت می کنی. تو ولی مایی پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی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 فسا اکتبها للذین یتقون و یعطون الزکاة والذین هم بی آیاتنا یؤمنون و برای ما در این دنیا و سرای دیگر نیکی مقرر فرما این که این ما به سوی تو بازگشت کرده این. خداوند در برابر این تقاضا به موسی گفت مجازاتم را به هر کس بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته و آن را برای آنها که تقوا پیشه کنند و زکات را بپردازند و آنها که به آیات ما ایمان میآورند مقرر خواهم داشت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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخدايث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه والتبع النور و اتبع النور الذی انزل معه اولائک اولائک هم المفلحون همانها که از فرستاده خدا پیامبر امی پیدقی میکنند پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است میابند آنها را به معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد اشیاء پاکیز را برای آنها حلال می شمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش و گردنشان بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند آنان رستگارانند قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بگو ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم همان خدایی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست، معبودی جز او نیست، زنده می کند و میمیراند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستادهاش آن پیام بر درس نخانده ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد، و از او پیروی کنید تا هدایت یابی. و من قوم موسى يَهْدُونَ یهدون بالحق وبه يعدلون و بهی یعدلون و قوم موسی گروهی هستند که به سوی حق هدایت می‌کنند و به حق و عدالت حکم می‌نمایند و قطعناه مثنتی عشرت اسباطا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 کلو من طیبات ما رزقناكم و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم يظلمون. ما آنها را به دواز ده گروه که هر یک شاخه ای از دودمان اسرائیل بود تقسیم کردیم و هنگامی که قوم موسی در بیابان از او تقاضای آب کردند به او وحی فرستادیم که عصای خود را بر سنگ بزن ناگهان دوازده چشم از آن بیرون جست آنچنان که هر گروه چشمه و آبش خور خود را میشناخت. و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرستادیم و به آنان گفتیم از روزی های پاکیزهی که به شما داده این بخورید و شکر خدا را به جا آورید آنها نافرمانی و ستم کردند ولی به ما ستم نکردند لکن به خودشان ستم می‌نمودند. و اذ قیل لهم مسکنو هذه القرية و منها حیث شئتم و و قولوا حطت و ادخلوا الباب لَكُمْ نغفر لكم خطیعاتكم سنزید و به خاطر بیاورید هنگامی را که به آنها گفته شد در این شهر بیت المقدس ساکن شوید و از هر جا و به هر کیفیت بخواهید از آن بخورید و بهره گیرید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز و از در بیت المقدس با تواضع وارد شوید که اگر چنین کنید گناهان شما را می بخشیم و نیکو کاران را پاداش بیشتر خواهیم داد فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا فاورسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. اما ستمگران آنها این سخن و آن فرمانها را به غیر آنکه به آنها گفته شده بود تغییر دادند از این رو به خاطر ستمی که روا می داشتند بلایی از آسمان بر آنها فرستادیم و مجازاتشان كثيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون و از آنها در باره سرگذشت شهری که در ساحل دریا بود بپرس. زمانی که آنها در روزهای شنبه تجاوز و نافرمانی خدا میکردند. همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود بر سطح آب آشکار میشدند. اما در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی آمدند این چونین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می کردند و اذ قالت امت منهم لمتعظون قوما الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرتا الى ربكم ولعلهم یتقون و بیادار هنگامی را که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند چرا جمعی گنهکار را اندرز میدهید که سرانجام خداوند آنها را حلاک خواهد کرد یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند گفتند این اندرزها برای اعتذار و رفع مسئولیت در پیشگاه پروردگار شماست به علاوه شاید آنها بپذیرند و از گناه باز ایستند و تغواپیکنند. فَلَمَّا نَسُومَا ذُكِّرُ بِهِ أَجْنَبِينَ الَّذِينَ يَنْهَوُنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَائسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اما هنگامی که تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند لحظه عذاب فرارسید و نهی کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند به خاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدی گرفتار ساخیم. فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلَى لَمُمْ كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِن آری، هنگامی که در برابر آن چه از آن نهی شده بودند، سرکشی کردند، به آنها گفتیم به شکل میمونهایی ترد شده درایی وَاِذَا اَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يُسَوْمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ونيز بخاطر بیاورد هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد تا دامنه قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سختی قرار دهد زیرا پروردگارت مجازاتش سریع و در این حال نسبت به تو آمرزنده و مهربان است و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلك و بلوناهم بالحسنات والسیعات لعلهم يرجعون. و آنها را در زمین به صورت گروه های پراکنده ساختیم گروهی از آنها صالح و گروهی ناسالحند و آنها را با نیکی و بدی ها آزمودیم شاید بازگردند فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيُغفر لنا وإي يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا والدار خير للذين يتقون أفلا تعقلون پس از آنها فرزندانی جای آنها را گرفتند که وارث کتاب آسمانی تورات شدند اما با این حال متاع این دنیای پست را گرفته بر اطاعت فرمان خدا ترجیح میدهند و میگویند اگر ما گناهکارین توبه میکنیم و به زودی بخشیده خواهیم شد اما اگر متاع دیگری همانند آن به دستشان بیفتد آن را نیز میگیرند و باز حکم خدا را پشت سر میافکنند آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده که بر خدا دروغ نبندند و جز حق نگویند و آنان بارها آن را خانده اند؟ و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است آیا نمی فهمید؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اِنَّا لا نُضِيعُ اجر الْمُسْلِحِينَ و آنها که به کتاب خدا تمسک جویند و نماز را دارند پاداش بزرگی خواهند داشت زیرا ما پاداش مسلحان را زایع نخواهیم کرد وا اذنات الْجَبَلَ الجبل فوقهم كانه ذله وظنوا وظنوا بِهِمْ له واقع بهم خذوا ما مَا بقوه واذكروا فاذكروا ما فيه لعلكم تتقون ونيز بخاطر بیاورد هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فراز آنها بلند کردیم آنچونان که گمان کردند بر آنان فرود میآید و در همین حال از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم آنچه را از احکام و دستورها به شما داده ایم با قوت و جدیت بگیرید و آنچه در آن است به یاد داشته باشید و عمل کنید تا پرهیزگار شوید.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 و به خاطر بیاور زمانی را که پروردگارت از پشت و سلب فرزندان آدم زرگه آنها را برگرفت و آنها را گواه تن ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا گواهی می دهیم چون این کرد مبادا روز رستاخیز بگویید ما از این قافل بودیم و از پیمان فطری توحید بی خبر ماندیم او می گوید انما اشرک من قبل و کننا ذریه من بعدهم اف بما فعل المبطلون <تصفيق> یا بگویید پدران ما پیش از این مشرک بودند و ما فرزندانی پس از ایشان بودیم آیا ما را به خاطر آن چه باطلندیشان انجام داده اند حلاک می کنیم این گونه آیات را توضیح می دهیم و شاید به سوی حق بازگردند و بدانند ندای توحید در درون جانشان از روز نخست بوده است وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ منها, مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ بر آنها بخان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم ولی سرانجام خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد واذ شد ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا القصص لعلهم و اگر میخواستیم مقام او را با این آیات و علوم و دانشها بالا میبردیم، اما اجبار برخلاف سنت ماست پس او را به حال خود رها کردیم و او به پستی گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد مثل او همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری با باز همین کار را می گویی چنان تشنه دنیا است که هرگز سیراب نمی شود. این مسئله گروهیست که آیات ما را تکذیب کردند. این داستانها را برای آنها بازگو کن شاید بیندیشند و بیدار شوند سا مثلا القوم الذين كذبوا بی و وانفسهم كانوا يظلمون چه بد مثلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و تنها به خودشان ستم می‌نمودند من یهد الله فهو و من یضلل فأولئیک آن کس را که خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست و کسانی را که به خاطر اعمالشان گمراه سازد زیانکاران واقعی آنها هستند ولقد ذرَّنَا لجهنم كثيراً من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. اولائی که بل هم اضل اولائی هم الغافلون به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم آنها دلهایی دارند که با آن اندیشه نمی‌کنند و نمی‌فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنبند. آنها همچون چهار پایانند بلکه گمراه اینان همان قافلانند چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند هند ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين الذین يلحدون في أسمائه سيعزون ما و برای خدا نامهای نیک است خدا را به آن نامها بخوانید و کسانی را که در اسماء خدا تخریف میکنند و بر غیر او مینهند و شریک برایش قائل میشوند رها سازید آنها به زودی جزای اعمالی را که انجام میدادند میبینند و من من خلقنا امت یهدون بالحق و بهی عدلون و از آنها که آفریدین گروهی به حق هدایت می و به حق اجرای عدالت می والذین كذبوا الذین سنستدرجهم من حیث لا يعلمون و آنها که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایی که نمی دانند گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد و املی لهم این نکیدی مدین و به آنها مهلت می دهم تا مجازاتشان دردناکتر باشد زیرا طرح و نقشه من قوی و حساب شده است و هیچ کس را قدرت فرار از آن نیست. اولم متفکروا ما بصاحبهم من جنه. هو الا آیا فکر نکردند که همنشین آنها پیامبر هیچ گونه اثری از جنون ندارد پس چگونه چنین نسبت ناروایی به او میدهند؟ او فقط بین بی دهنده آشكار است که مردم را متوجه وظایفشان نیستند. اولم ياظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعسا وأنعسا يكون قد اقترب بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آيا در حکومت و نظام آسمانها و زمین و آنکه خدا آفریده است از روی دقت و عبرت نظر نیرکندند؟ و آیا در این نیز اندیشه نکردند که شاید پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد؟ اگر به این کتاب آسمانی روشن ایمان نیاورند بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ من یضلل الله فلا هادی له فی طغیانیم هر کس را خداوند به جرم اعمال زشتش گمراه سازد هدایت کننده ای ندارد و آنها را در طغیان و سرکشیشان رها میسازد تا سرگردان شوند.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 یسألونك كأندك حفی عنها قل انما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون درباره قیامت از تو سؤال میکنند كی فرا میرسد بگو علمش فقط نزد پروردگار من است و هیچ کس جز او نمی تواند وقت آن را آشکار سازد اما قیام قیامت حتی در آسمان ها و زمین سنگین و بسیار پر اهمیت است و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمی آید باز از تو سوال می کنند چنان که گویی تو از زمان وقوع آن با باخبری بگو علمش تنها نزد خداست ولي بیشتر مردم نميدانند قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون بگو من مالک سود و زیان خیش نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد و از غیب و اصرار نهان نیز خبر ندارم مگر آنچه خداوند اراده کند و اگر از غیب با خبر بودم سود فراوانی برای خود فراهم می کردم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید من فقط بین دهنده و بشارت دهنده ام برای گروهی که ایمان می آورند و آماده پذیرش حق هو او الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها لیسکنا الیها فلما تغشات حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدُّعَا وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لئن آتيتنا, صالحا لنكونن لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ او خداییست که همه شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاسایند سپس هنگامی که با او آمیزش کرد حملی سبک برداشت که با وجود آن به کارهای خود ادامه می داد و چون سنگین شد هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند اگر فرزند صالحی به ما دهی از شاکران خواهیم بود؟ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اما هنگامی که خداوند فرزند صالحی به آنها داد موجودات دیگر را در این موخ بس مؤثر دانستند و برای خدا در این نعمت که به آنها بخشیده بود همتایانی یانی قابل شدند خداوند برتر است از آنچه همتای او قرار میدهند. آیا موجوداتی را همتای او قرار میدهند که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون الذين توانند آنان را یاری کنند و نه خودشان را یاری میدهند و ان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام أنتم صامتون هرگاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند و برای شما یکسان است چه آنها را دعوت کنید و چه خاموش باشید این الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم فدعوهم فلیستجیبو لکم این کنتم صادقین آنها ایرا که غیر از خدا می و پرستش میکنید، کنید بندگانی همچون خود شما هستند آنها را بخانید و اگر راست میگویید باید به شما پاسخ دهند و تقاضایتان را برابرند اَلَهُمْ اَرُجُلُونِ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدِي يَبِقِشُونَ بِهَا ام لهم اعیونون يبصرون بها ام لهم آذانون يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم بکیدون فلا آنها حد اقل همانند خود شما پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند و کاری انجام دهند یا چشمانی دارند که با آن ببینند یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند نه هرگز هیچ کدام بگو اكنون که چنین است بطهای خیش را که شریک خدا قرار داده اید بر ضد من بخوانید و برای من نقشه بکشید و لحظه ای مهلت ندهید تا بدانید کاری از آنها ساخته نیست. این ولی الله الی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین. بدیو سرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او همه صالحان را سرپرستی می کند. وَالَّذِينَ تدعون من دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَاَنْهَا را که جز او نمیتوانند یاریتان کنند و نه حتی خودشان را یاری دهند وإن تدعوهم إلى الْهُدَى لا يَسْمَعُونَ و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون و اگر آنها را به هدایت فراخانید سخنانتان را نمی شنوند و آنها را میبینی که با چشمهای مصنوعیشان به تو نگاه میکنند. اما در حقیقت نمی بینند العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین به هر حال با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکیها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان و با آنان ستیزه مکن و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعیذ بالله اینه سمیع علیم و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد به خدا پناه بر که او شنونده و داناست الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مبصرون. پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌های شیطان شوند به یاد خدا و پاداش و کیفر او میافتند و در پرتو یاد او راه حق را می‌بینند و ناگهان بینا میگردند و اخوانهم یمدونهم فی الغیث و لا و ناپرهیزگاران را برادرانشان از شیاطین پیوسته در گمراهی پیش میبرند و باز نمی ایستند وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَذَا فِي كِتَابِ النُّزُولِ وَحْي تَأْخِيرُ فَتَد و آیه برای آنان نیاوری میگویند چرا خودت از پیش خود آن را برنگزیدی بگو من تنها از چیزی پیروی میکنم که بر من وحی میشود این وسیله بینایی از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است برای جمعیتی که ایمان میآورند وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرادهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت خدا شوید و اذكر ربک فی نفسك تضرعا و ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بِلْغُدُو وَالْآصَالِ پروردگارت را در دل خود از روی تزرع و خوف آهسته و آرام صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون آنها که در مقام قرب نزد پروردگار تو هستند هیچگاه از عبادتش تکبر نمی بسند و او را تسبیح می گویند و برایش سجده می کنن.